او پس از مرگ پدرش به جایی اینکه سخت کار کنه تو کوچه و خیابون به بازی مشغول بود. تو همون کوچه و خیابون بود که اون غریبه قد بلند رو دید. در واقع غریبه جادوگر آفریقایی بود که قدرت زیادی داشت. هرچند علایتین این چیزا رو نمیدونست ولی بازم وقتی مرد بلند قد او رو گرفت خیلی ترسید. غریبه از او پرسید تو پسر مصطفی خیاتی؟ اینطور نیست؟ علایدین گفت بله ولی پدرم خیلی وقت پیش فوت کرده و کسی غیر از من تو خونه نیست که از مادرم نگاه کنه من ناراحتم چون ما خیلی فقیریم غریبه گفت افسوس پدر تو برادر عزیز من بود این سکه طلا رو واسه مادرت ببرو به او که من به دیدنش خواهم اومد وقتی علایدین ماجرا رو واسه مادرش تعریف کرد مادرش باگیری گفت اینم یکی از همون داستانای که میبافی جادوگر روز بعد جلوی در اونا ظاهر شد و با خودش طلاها و هدایای بیشتری آورد کمی بعد علایدین و مادرش مرد غریبه رو دوست خودشون میدونستن. جادوگر گفت بعد از اینکه لباسهای جدیدی برات خریدم تو یه جای زیبایی خارج از شهر میبرم و با علایدین بیرون رفتند. تو را جادوگر به علایدین قول داد که برای اون مغازهی بخره. اونا به راه خود ادامه دادن تا اینکه به یک عجیب و خلوت رسیدن. دو درخت پیچخورده بزرگ جلوی راه اونا رو گرفته بود و علایدین کم کم داشت میترسید. اون گفت امو منو کجا میبری؟ ولی جادوگر اونو به سمت جلو حول داد و گفت حالا اینجا استراحت کن تا من قدرت خارقالادم رو بهت نشون بدم. ولی اول مقداری چوب جمع کن تا من آتیش روشن کنم ارجی جادوگر به گفت اون انجام میداد کمی بعد چوبها شولور شدند و پس از اون جادوگر مقداری اتر که بوی تندی داشت و داخل شولا انداخت و کلمات عجیبی رو زمزمه کرد درست وقتی هلایادین در فکر فرار بود سنگ بسیار سنگینی جلوی پاهاش ظاهر شد جادوگر گفت اونو با حلقه برنجی بالا ببر و اسم پدر و پدر تو تکرار کن. با اینکه که بیچاره آرزو میکرد هزاران مایل دورتر از اونجا بود ولی مجبور بود هرچی که جادوگر میگر رو اطاعت کنه. وقتی او تاریکی امیق زیر سنگو دید از ترس گریه کرد. جادوگر گفت این حلقه رو بگیر و برو پایین. این حلقه تو رو از تمام خطرات محافظت میکنه. گنجای زیادی اونجا هر که دوست داری جمع کن، فقط چراغ قدیمی کوچک داخل غار و واسه من بیار. علایدین پایین رفت تا به های عجیبی رسید که میوههای سبز و قرمز و نقره درخت درختای او جواهرنشان بود و نورشون سوسو میزد. وقتی علاءالدین جیباشو را از میوههای درخشان پر می کرد پیش خودش گفت ثروت و دارایی ای امپراتور اینجا قرار داره. بعد گشت و چراغ پیدا کرد. چراغ به نظر قدیمی و پرگرد و خاک میومد. او چراغ و داخل پیراهن عبر گذاشت و بالا رفت. وقتی جادوگر علایدین رو دید گفت چراغ به من بده. علایدین گفت اول کمک کن تا بالا بیام بعد چراغ بهت میدم. جادوگر اصبانی شد و گفت نه نه اول چراغ به من بده. و چون علایدین حرفش رو گوش نکرد با فریادی از خشم و عصبانیت سنگ و شکست و در غارب است. دو روز تمام سپری شد. علایدین از فرد گرسنگی نزدیک بود بیهوش بشه. ولی به طور اتفاقی حلقه که جادوگر به او داده بود و با دستش مالید. نادهان یه قول از ایم و جسه جلوش ظاهر شد. او گفت من بردی تو هستم. بردی حلقه. علایدین با ناباوری گفت بردی حلقه؟ پس من به تو دستور میدم منو از اینجا بیرون ببریم. علایدین توی چشم به هم زدن خودشو خارج قاردید. اون نجات پیدا کرده بود با خوشحالی شروع به دویدن کرد دوید و دوید تا به نزدیک خونشون رسید مادرش کنار در منتظر بود فریاد زد مادر مادر گریه نکن من برگشتم او تو خونه جیبهاشو خالی کرد و جواهرات درخشان عجیب و به مادرش نشون داد و آخر از همه چراغ قدیمی پرگرد خاک و بیرون آورد. برد علایدین و مادرش تمام شب و با هم صحبت می وقتی صبح شد مادرش بهش گفت پسرم چیز واسه خوردن نداریم ولی شاید امروز شانس بیاریم و بتونم بافتنیم و بفروشم علایدین گفت بیا چراغ قدیمی رو بفروشیم مادرش گفت باشه ولی اول بذار اونو تمیز کنیم اما تا دستمال گردگیرو رو رو چراغ مالیدن ناگهان یه غول خیلی خیلی بزرگ و قوی هیکل جلوشون ظاهر شد. غول گفت من برده چراغ و برده شما هستم. او به قدری بزرگ و بلند و قوی بود که علایدین و مادرش در مقابل اون کتوله به نظر می رسیدن. علایدین با صدای شجانهی گفت چیزی واسه خوردن ما بیار؟ علایدین تو عمرش چنین ضیافتی رو ندیده بود. تنها بشقاب‌های طلایی به اندازه یک امپراتوری ارزش داشتند و تو اونا غذا، بهترین میوهها و ظرفهایی پر از برنج خوش کوفته قلقلی و ماهی گذاشته شده بود. وقتی قوله چراغ ناپدید شد، علایدین به مادرش گفت: بیا مادر، بیا بخور. اینقدر نترس. از این به بعد دیگه ما هیچ ای نداریم. ولی مادر علایدین احساس راحتی نمیکرد و به پسرش گفت خواهش میکنم چراغ دور بنداز چون این چراغ کار ارواح خویسه علایدین خندید و گفت نگران نباش مادر ما به اندازه یه هفته یا شاید هم بیشتر غذا داریم تازه بعدش بعدشم میتونیم های طلایی رو ببریم بازار و بفروشیم او همین کارو کرد و با فروش ها نه تنها غذاهای گران قیمت خرید حتی برای خودشم پیراهن و کمربند خرید موقعی رفتن به بازار و بازی با دوستاش اونا رو بپوشه. پنج سال گذشت. حالا علایدین به سنی رسیده بود که باید ازدواج کنه و همسری انتخاب کنه. از غذا روزی چشمش به دختر امپراتور که داخل درشگه بود و از خیابون میگذشت افتاد. یک دل نفت صد دل آشقش شد. وقتی علایدین به خونه رسید با گریه به مادرش گفت من تنها دختر رو که دوست دارم باش ازدواج کنم و دیدم. اون دختر امپراتوره. مادرش جواب داد. باید دیوونه شده باشی. تو میخوای با پرانسیس ازدواج کنی؟ علایدین گفت. منتظر بمونو ببین. میخوام بهترین لباستو بپوشی و چند تا از این میبه های برداری و به قصد بری و از طرف من به امپراتور بدی. مادر علایدین که از ترس به خودش میلرزید قبول کرد. دربانان قصر با دیدن سنگ های قیمتی به او اجازه ورود به قصر رو دادن. وقتی مادر علایدین پیش امپراتور رسید گفت پسرم هدیه کوچکی برای شما فرستاد؟ » بعد زانو زد و جعبه جواهرات رو پیشکش کرد. چشمان امپراتور از حرس و تمر روشن شد چون تا قبل از اون چنین جواهرات زیبا و با ارزشی رو ندیده بود. امپراتور گفت من هدیه تو را قبول می مادر علایدین که فرصت و مناسب دید گفت پسر من میخواد با دختر شما ازدواج کنه اگه امپراتور جواهراتو جواهرات نگرفته بود همونجا دستور میداد سر اونو قطع کنند ولی اندکی فکر کرد و از وزیر اعظم نظرشو خواست وزیر تو گوشش یواشکی گفت از او بخوا که چل طبق تلایی دیگه از این سنگهای قیمتی بیاره مادر علایدین پس از بازگشت به خانه خاصی امپراتور رو به علایدین گفت و از او خواست از این کار دست بکشه علایدین گفت من دست بر نمیدارم بعد چراغ و برداشت و اونو مالید چند دقیقه نگذشته بود که صف بزرگی از بردگان جلوش ظاهر شدند که هر کدوم طبقی رو سرشون داشتن و به سمت قصر امپراتور حرکت کردند وقتی امپراتور اون همه گنجه دید گفت که مردی با این ثروت مناسب ازدواج دختر منه و وزیرانش رو صدا کرد تا ازدواج اونا رو اعلام کنه. به این ترتیب علایدین و دختر امپراتور توی جشن بزرگ و با هم ازدواج کردند. به نظر می رسید که شادمانی و خوشبختی علایدین تکمیل شده. پرانسیس او زیباترین دختر چین بود. قصرش با کمک غول چراغ حتی بزرگتر و تر از قصر امپراتور شده بود. او تندترین اسباق و بهترین خدمتکارا رو داشت. تو اون زمان علادین به دلیل مهربانیش با فقرا مورد علاقه مردم بود و از او برای اینکه توی ترکیب شورای دولتی عضو بشه دعوت میکردند. یه روز وقتی علادین خارج از خونه بود، گدای پیری به در خونه‌اش اومد. گدای پیر کیسهای پر از چراغای نو داشت که با چراغای کهنه عوض کرد پرنسس به خدمتکارا گفت: گوش کنید، انگار این پیرمرد عقلشو از دست داده اون میخواد چراغای نو رو با چراغای کهانه عوض کنه زود باشید، زود باشید برین و اون چراغ قدیمی رو که شوهرم تو اتاقش نگمی داره با اون بدین و یه چراغ نو بگیریم فروشنده چراغ همون جادوگر قدیمی بود که تغییر قیافه داده بود اخبار مربوط به علایدین تا آفریقا رفته بود و به گوش رو رسیده بود. و او پس از شنیدن اونا خیلی سریع به سمت چین حرکت کرده بود تا چراغ جادو رو به دست بیاره تا چراغ به دست جادوگر افتاد فوری غول چراغ رو احضار کرده و بگو دستور داد که قصر علایدین رو با هرچی داخل اونه به آفریقا ببره غول تعظیم کرد و توی چشم به هم زدن قصر علایدین و همراه به پرانسس به آفریقا برد وقتی علایدین به محل قصر برگشت و موضوع رو فهمید خیلی ناراحت شد. تو همین موقع سربازای امپراتور از راه رسیدن و اونو پیش امپراتور بردن. امپراتور تا اونو دید فریاد زد. بعد وقت بیچاره با دختر من چه کردی؟ علایدین گفت. چه روز به من مهلت بده تا اونو به اینجا برگردونم. اگه تو این مدت نتونستم دخترتونو بیارم دردن نمو بزن. امپراتور قبول کرد. علایدین به مدت چهار روز سرتاسر سر شهر رو به امید پیدا کردن پرانسیس گشت. وقتی تقریبا ناامید شده بود دستانش تو هم فرو برد. ناگهان غول انگشتر جلوش ظاهر شد. علایدین فریاد زد حلقه حلقه حلقه, حلقه رو فراموش کرده بودم در حالی که همیشه تو انگشتم بوده. غول پرسید سر من چه دستور می دهید؟ علاءالدین گفت: قصر رو پرنسس منو به من برگردون. خول گفت: این کارو نمیتونم انجام بدم. فقط قله چراغ میتونه این کارو انجام بده. علاءالدین گفت: پس منو ببر اونجا. به محض گفتن این حرف، خودشو جلوی قصرش دید که میان های طلایی بیابون و های ساده کاج قرار گرفته بود. وقتی به سمت قصر حرکت کرد، پرنسس زیباشو پشت پنجره دید. وقتی جلوی هم رسیدن پرانسیس گفت خیلی اشتباه کردم که چراغ تو به اون جادوگر بجنس دادم. جادوگر اونو همه جا با خودش میبره. علایدین گفت اگه امشب برگشت توی غذاش این پودر خوابابر رو بریز و بده تا بخوره. پرنسس پودر رو گرفت و علایدین و گوشه از قصر قایم کرد. کمی بعدش جادوگر از راه رسید. اون شب جادوگر خیلی خوشحال بود. چون مهربان مهربانتر از شبهای قبل شده بود. پرنسس غذای جادوگر را آورد. جادوگر خورد و به خواب عمیقی رفت. علایدین با دیدن این صحنه، زود از مخفیگاش بیرون اومد و شمشیرش رو بیرون کشید و سر جادوگر رو از بدنش جدا کرد. شاید این کار آقلانه ترین کاری بود که علایدین انجام داد. بعد از اون چراغ از داخل لباس جادوگر بیرون آورد و با تمام قدرتش اونو مالید. غول چراغ حاضر شد و گفت آمادی اطاعتم. علایدین گفت ما رو به چین برگردون. پس از اون علایدین و همسرش در چین بودن. اونا سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند چراغ جادو رو هم روی متکای مخمل سرخ که داخل یه جبیه شیشه ای بود گذاشتن دو سرباز همیشه از اون می میکردن آیا کسی میدونه پس از اون چه بر سر چراغ جادو اومد؟ یا اینکه الان چراغ جادو دست چه کسیه؟ من که میدونم کانال تلگرامی هزار افسان. داستان های افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی نقطه نشانی وبلاگ ما ام p s t i b l o g f کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی